بسم الله الرحمن الرحیم جلسی دهم ده و یازده دهم کلاس فقه مقارن استاد معظم زیایی دوشنبه 28 آذرماه 1401 حقه احلامی در این آقای اصلا حکم مطرح میشه یعنی دو نفر که مراجعه بیکنن به دادگاه دادگاه خانواده مراجعه بیکنن یه آقا ما طلاق بگیریم فلا بگیریم اختلاف خیلی آیا میگه برو یه حکمن منعه از این خانده مرد بیار یه حکم از خانده زن بیار چه اتفاقی میفته؟ آنکه آیا حکم الان هست یا نیست؟ من اینو یه تحلیلی براتون بکنم تا تو سجدم شبیه این پیدا میشه با یه ادبیات در واقع عبادیتر فقهیتر ببینید من آیا رو بنویسم این خفتم درست شقاق بین هم این شقاق نیست. چون خیلی اول شقاق که میشه دیگه. اگر میترسید چیزی را شقاق که. آره شقاق شقاق هم. شقاق بین هم بین هم ما. شقاق درست ان خفتم شقاق بین همه فب درست من احله و حکمان من هم. احله ببینی سوره باره که ببینید, ببینید دوستان ما آیا امروزه حکمی داریم یا حکمی نداریم شما بینیدون دادگاه خانواده میگن نه حکم چیه نهایت کاری که برای شما میکنم این برو شورای مشاور یه مراکزی هم درست کردن خودشون مشاورینی مثلا تقریبا وکیل در واقع تصخیری که میگن اینجا میگن مراکزی دارن تو قوم، تهران همه جا هم هستن میبرن پیش مشاور یه چهار جلسه برو همه اشتغال زایی برای اونا شده هم یه که هم شاید به شما بکنن بعد موقع نتیجه بیاد پیش قاضی آزی نظر بده خب، من بگید این حکم مخالف این آیه هست یا نیست؟ آقا بله هستیه، یا دو نفر، هکم من، هکم من زن من، چی میشه که امروزه ما از این آیه یا دست کشیدیم؟ این آیه نسخ شده؟ نه این آیه چی شده که من کنار دارم میذارم، یعنی قوه عدلیه ی ما؟ درست؟ این آیه رو کنار گذاشته آیا؟ چه شده؟ بناخد که نداره درسته؟ بالاخره اینه. آقا آیه در میگه درگیری که پیش اومه آره این یه راهش اینه. شما برو از یک راه دیگه فاصله کن. فبعسو فعل چیه؟ امره. فعل هم ظوره در چی داره؟ این فبعسو امر به زن و امر به دادگاه نیست که میخواد فاصله. خب همین زن شوهرها، آیا زن این کارو میکنه؟ فبعسو زن شوهر این کارو میکنی؟ نه. نذر فبعسو، شما مؤمنین مومنین در رو اساس زراشوارم جزش بودن ها زراشوارم جزشون هست یعنی خطاب آیه به کی میگی مؤمنی مومن. مؤمنی مرحله خطاب آیه مؤمنی مؤمنین چی کار می‌کنید شما بگید آقا تعیین حکم آقا حکم خوب برای تعریف می‌کنه یعنی چی ریش سفید ریش سفید آفلی بهش بگیم ریش سفید یا ببینید قرآن تو فضایی نازل شده شما برگردید به شبه جزیره عربستان هنوز که هنوزه عربستان هنوز به اون تمدن نوینی نرسیده او هزاران هزار کیلومتر فاصله داره اون زمانی که در واقع سوادی نبوده بعد فضای اون دوران قومی قبیلهی بوده درست شد؟ میگه اگر اختلاف داشید برید سراغ ریش سفید پس علت اینکه میگه برون ریش سفید چند تا تو دلش در بیارید یک خوب کنید نهادهای اجتماعی بوده یا نبوده؟ نبوده نهاد اجتماعی نبوده دو ریش سفید چه خاصیتی داره که میگه برو پیشش مقبول بوده یکی میگم مقبول بوده مشتاره. دیگه کی بوده, بوده. تجربه بوده خیلی نماد عقل بوده درست شد؟ اما امروزه که ما نهاده اجتماعی داریم یه نهادهای دوستان دانشی و علمی اومده نهاد چی اومده؟ علمی اومده این نهاد اجتماعی نبوده نهادهای دانش و علمی هم بگید نبوده خب تو اون فضا، اون که موجود بوده چون فلسفه‌یه ما دین رو نگاه کنیم، دین بناش داره بر برای تحکیمه، بگید از نهاد اجتماعی نبوده نهاد دانشی هم نبوده خب چاره چی بوده تون فضا تون تاریخ فهم میگه برگرد تون تاریخ حکم رو پیدا میکنی میگه آقا خب چاره ای نبوده جز بره سراغ چی بگی؟ ریش سفید که مقبول بوده تجربه داشته نماد چی هم بوده؟ فقط یک کاری کرده میگه چون اون زمانیه در حالت تعصبم بوده گفته چند تا بیاید دو تا بیاید. خودش دوره منشأ اختلاف نشه دیگه چون یه نفر خب آقا شوهر تو را خانواده یه نفر به بگه زوجه بره خودش میشه منشه اختلاف خودش اون موقع قبیله قبیلهی بوده چون قبیلهی اداره میشده دیگه نهادی به نام مثلا قوه قضاییه که نبوده که درست تمام تنهیدا رو کرده قرآن تا بیاد برسه به یه اصلی به نام تحکیمه بگید خانواده یویده اصلاح هم قدامه تا خانواده اصلاح بشه آنه امروزه ما بکنم نگاه کنید پس هدف چی بوده؟ تحکیم کن پس من یه چیزی می‌دیمسم سیاست گزاری قرآن یه سیاستگزاری کرده سیاستش چی بوده قرآن؟ حفظه بگید آقا؟ خانواده بریم شما منات رو حالا این چی می‌خواد دوستان؟ یه برنامه میخواد. برنامهش حسب چیه؟ زمان حسب مکانه برنامه اون موقع چی بوده؟ مثل حکم تو مشکل پیزن حکمی بیایی پیدا شد. اما امروزه ما نگاه می‌کنیم دوتا اتفاق افتاده ما امروزه ببینیم اون موقع نهاد اجتماعی نبوده اون نهاد اجتماعی تیک دو هست اون موقع نهادهای دانشی و علمی نمازم. نبوده امروز تیک میخوره نهاد دانش و علم هست اون موقع ریش سفید مقبول بوده تجربه داشته نماد عرب هم بوده همه این سه درست شد امروز جمع میشه در این نهادهایی چی؟ دانشی ای بسا امروزه یه پسری باشه 20 سالش باشه سال بیس یه بابای ریش سفید هم داشته باشه الان شما این خیلی دیگه هست بعضی از این ها رو دیدید حالا مادر پدر مثلا یه وامی بهشون میدن مثلا پنج میلیون وام بهشون میدن این میگه با کی باشم برام 5 میلیونو یه یهو چونه نشد من من وام گرفتم چیکار بکنم این وامو برم خودرو رو ثبت نام بکنم برم سکه ثبت نام بکنم برم یه چیزی شنیده به نام بورس مثلا برم بورس ثبت نام بکنم یه تو متکا بذارم یا مثلا یه انگوشت هم رو کردم بداخل چبری میاد طرف چرا؟ چون به این بلوغ رسیده که یه نهادی اجتماعی داریم اولا دوم نهادهایی چی پیدا شده؟ دانشی و علمی لذا بگواره حل مشکل کرد لذا به اون مقبولیت، تجربه و نماده اول دانش چیاش رو گرف؟ دانش بیترفه دانش دوستان؟ بی طرف الان چند روز پیش یکی از ارگان رو تصادف کردیم ما مهمونش بودیم گوی چه دینه شما دارید گوی سه تا مهره بشکنه تصادف کرده موشه چپ کرده سه تا مهره بشکنه با یه مهره ستون فقرات هیچ فرقی نداره یه دونه شکسته باشه چه میلیون می‌دهند بایه پار سال و امسال ما گواهی بردیم پیزشگی قانونی امارای و سیتی و پلان رو میزه سه تا معارشه که از سر ولی بازم اون چرتمان رو دادم ما اون گرفتیم که سه تا به برداما بدیم گفتم که به خیلی از گوید و دیاتی کنیم اما اینترنت بزنیم ایگاه کنیم من همون موقع موبایلمو دروردم و جیوه درست زدم دیگه ایره قانون دیدم شوونو. بیا دیه دیه میگه که اگر ستون فقرات با جراحی خوب بشه یا بدون جراحی نقص عزب بشه یا نقص عزب نشه و نقص عزب شدو باید نه گفتن جراحی گفت نه گفتم باید پیزشون میگه ستا هیچ گدونه شدو یک دمومه دیه است یک دمومه دیه یعنی فقیلویه. دیگه هر چه هر چهش بیا یک تو جراحی نشدی نقص عضو تو تعادل را رفتن نه تو ایستادن نه پزشکی هیچ مشکلی نداره فقط تو آسیب دیده ولی دیگه زندگی می‌کنیم ما. ببین دیگه اون با معرفت دانش دیه سوگیری دانش نداره هم. که بگم مثلا قانون گزاری مثلا من باشم بچه بیا یک دانش تو سوگیری نداره لذا اینجا اون زمان چون سوگیری ها بود چون قومی طبیلی اداره میشد درست شد؟ سوگیری بود چکار که برای رفع سوگیری؟ آیه نه بود دوتا نه یه دونه دو تا. اما امروزه اختلافی دوپره میگه چند تا مشاور بد بگه؟ ده. یه دونه چرا میگه یه دونه؟ چون این مشاور بر اساس چیه؟ دانش دانش هم سوگیری؟ ده. از قرآن دو میاد برنامه رو میگه بعد برنامه چیه مثلا بگید ها حکم درست شد ریش سفید این ریش سفید یه جیبی پیدا بکنه حالا ما اقدام بکنم قرآن میگه باید حلش کنی سیاست حفظ بود برنامه چیه؟ باید بری سراغ حکم باید بری سراغ یه نهاد دیگر اون نهاده دیگر اقدامش وابسته دوستان به زمان مثلا قرن ابتدایی قرن مثلا اواسط قرن یا امروزه حالا امکان داره امکان داره دوستان یه 500 سال دیگه دیویس سال دیگه منو شما نیستیم درست شد داریم از آسمون نگاه میکنیم زدیمون. یه نفر بیاد سر کلاس یه حرف دیگه میزنه یا 500 سال پیش تو این کلاس ها میگفتن باید برید تو قبق قضایی مثلا یه جمهوری اسلامی یه دوره تشکیل شد در تکه از زمین اومدن گفتن که به جای عرصه چنی آها به جای عرصه شما حکم مشاور باشه اینم نمیخواد مشاور برای چی باشه آقا ما یه سنسورایی درست کردیم وقتی که ازدواج باید به درست بکنید سمیزارم باید حربه هست درست؟ هر کدوم از زن و فرد بدرفتاری بکنن سوء رفتار داشته باشن این آلارم میده این حافظم، حالا بخواییم، تو که هم نمیساسم این سنسور ها رو در میدیم؟ میساسیم، دستگاه، دست تحلیل میدیم آها تو اینجا بل بودی، تو خیانت کردی، تو همدهدی نکردی تو فلان، تو فلان خانم تو این کار نمیده، کشنی رو بهت جواب میده نه مشابهه، نه چیست آن درم میارم اون حالا به نقرد درم اینجا بسان تو شهار میزنم حالا، حالا، فلاسه یک کار هم اتفاق که بعید هم نیست مثلا شما توی جام جهانی دیگه چه اتفاق؟ آه. یه زنگو دید، جام جهانی، فوتبال حالا توی این اخباری که میگفتن با مارادون رو با دستش توپ زده رفته تو گل دست خدا. دست دست دستش زده رفته، با حالا این نفه مثلا این پره بود یا جهاراگاه توپه مثلا یه میله نرفته بود؟ نرفته بود اسفانی که خودش قول فوتباله مثلا خوب. شکست خب. ما شاید 20 سال پیش سی سال پیش اصلا تصور نمیکردی که مثلا یه چیزی تو تو کار بزنن تو با شارژیه دیگه به جای اینکه تلمبا بگیری شما حالا آره این من که شما تو یاد باشه دیگه این تلمبا بود حالا آره هم هست آره آره باعث تو دیگه شارژ بعد بکنی تو این سنسوره بیاد یعنی اش که مثلا یه تاحم یا تو اینجوری سرزار داره اینجا هم پس اقدام ها بستگی داره لذا شما نمیتونی بگی که حالا این چالشی گذگرم اینجا به وجود میاد امامیه بیاد بگه من دیگه من اینه. قرآن یه سیاستی داره تحکیم یه برنامه‌ای داره یه اقدام داره سیاست برنامه اقدام اقدام قرآنم کاری به اقدام نداره که قرآن پس اون موقع سیاست گفت اقدامش هم گفت یه اشکال به وجود میاد، ایران برای چی دارم میگم تو زن اشکال نیاد که بگیم همه قرآن کتاب چیه بگی؟ جافدانگی اشکال جافدانگی یا جا جافدانگی جافدانگی کرست شد یا حتی به حاله روزی چیه قرآن جمعان شمول و باشه یعنی چه دینیه که جهان شمول نیست حکم دیگه سیخی چنده دکتر به سر خودمون بگید با ثباتتر از کل خواندان رو نمیزه طلبا دیگه مطلب رو میشه نگاه قرآنی نگاه قرآنی با برای اون اصله اقتضا میکنه الان دیگه بس حکم معنا نداره حکم میشه همین آدشه که به مثال زدن یه دستور رو لقن یا یعنی میده کار دسته میده پس گای اوقات ما اختلافاتی که میبینیم این این شکلیه حالا همین میشه منشه اختلاف این فقه امامیه و فقه بگی عامه آمه, آمه بیا با داریم ما. اینها میگه این خفتم شما و بینه ما درست اگه اختلاف بود فهم اصول. ای مومنین ببینید ای مومنین حالا ما به جای مومنین اینجا چی رو گذاشتن من؟ نهاد اجتماعی، یعنی نهاد اجتماعی، او نظایی، داد تو الان موبست اون موقع مومنین چون موقع جامعه دست کی بود؟ چه اصلا نهادی نبود در جامعه که مردم خودشون نداره میکردن فقط یه رویش سفید بود رضا ختابشو کرد به اون برای اون زمانه اما نگه دوما جاودانگی قرآن کجا میره این باقا جاودانگی قرآن کجا خودشون نشون میده؟ تو این اصله. شد. شد. اصل مقاصد دارم آفرکت اینکه که این مقاصد میره شد درست شما؟ اینکه از این مقاصد میره شد اصل مقصد تحکیم خوا حالا, حالا. حالا. میری تو مختلف. برنامه میری تو اقدام حجاب آقا قرآن بس هجاب باید سر بکنه آقا هجاب دوباره یه سیاستی داره یه برنامهی داره یه اقدامی داره مثلا آن سیاست اینه که هجاب باید حفظ بشه مثل افت عمومی آفره عمومی این در واقع اون اصلیه که ما باید دنبالش باشه حالا مثلا یه برنامه میشه امروز مثلا هم که آقا حفظ اجاب برنامه مثلا امر معروف و نحی از منکر امر معروف نحی از منکر یه با میان آقا افصلا باید با که مداخله انسانی نباشه تو این کار مداخله انسانی نباشه مثلا چیکار کنیم دیگه میشیرن سیاست در واقع او سیاستی که هست برنامهریزی میکنه برای یک اقدام با چه سیاستی که مثلا ماها مداخله انسانی مفسده داشت پس دردی رو بذاریم کنار امروزای آی شهر بره مثلا سر خیابون یک خانوم بدعجابی رو ببینه بهش بگه که خانوم مثلا با لطافت و شوخی و خنده با این ظرافتی که آی شهر بگیداره اصلا جذابیتی داره <تص> خانمه تو با و مقصد درست میشه مقصد درست میشه یا اونگه اصلا کار به جای باریک میکشه مثل باشه. بیا بگی آقایی چی بیا گشته میشه یه بگی سیاست از سیاستمون هست. ما عبد نمیشیم از سیاستمون درست شد اما چیمونو عوض میکنیم بگی؟ اقدامونو عوض میکنیم مثلا ما باید اشتباهیم معروش از بعض قور اشتهایی <تصفيق> یا مثل مثلا توپه آقا ما بعد بد حجاب رو مثلا با دوربین می‌واد تشخیص اعجا چه می‌کنن چهره چهر... روشا شناسایی <تصفيق> می‌کنن حالا به اخره خیلی بهتره دیگه <تصفيق> ببینید این ای آیا اگه ای کار بکنه کسی باید بگه آقا با شما در حکومت یا جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی اومدید فریضه امر به معروف رو نهی کردی نه کیسی من بکنه و شما بکنه؟ نه من تقدیل نکردم اون یه اصل سرش خودش هست چیش عوض میشه؟ نه پس ما در جریانات نزاعی که در فقه مبارن پیدا میشه بین عامه و امامیه بعضی از خود امامیه بعضی خود عامه یکی از منشهاش همین نکات بود که عرض کردم گوری زیان بذاریم به این جمله مربوط هدف وسیله رو توجیه میکنه یا نمیکنه؟ هدف وسیله رو توجیه میکنه یا نمیکنه؟ الان در دو مساله کار انجام داد. شرط شرط من چی بود؟ تحقیق کردم. تحقیق کردم هدف. هر وسیله. هر نه نه نه نه. نه. ببین... اینجا شما ببینیم اوقات شما مانع دارید اونو دلیل دیگه ای شما هر کاری را انجام بدی. یعنی این کاری دیگه چون یا من هجاب رو میارم چیجونی میارم؟ گشتر شدی میزنم، میگیرم میکشم، سکته میدم، ندونم، میترسونم می نه، من چون نه، نه یا این کار خودش یه منع شرعه یه خاص داریم که مثلا زر و نواد بشه من یعنیم تفصیل بدیم، این جمعه مطلقه حالا مرموم هم کلید اکید داشته شد, شد توضیح بدیم همه جای نیست که هدف سر توجیه نکنه و تو وقت میکنه برآیند چارچوبی که شما گفتین نمیذارم اینو این مکتب اصلا بهش میگن دیگه نه دیگه شما چارچوب رو رعایت کردین گفتید آقا من یه شما عرض کردم خلاص من توجی نگیرید یه داریم شما اونا دلیل خاصی به شما میام حمله یه کاری میکنم از فردا صبح همه زنها چی بشن؟ چرا شما اینجوری مسائل اون یکی که خودتون مسائل دارید بگید دیگه، <تصفيق> <پیدو کنید> دیگه. <تصفيق> <تصفيق> شما هم من از میشه دیگه. خب ببینید شما وسیله وسیله چی ادعا وسیلهشون میگه وسیله آره هم من, هم من, بوجه بوجه شما. بوجه بوجه. من من گشتم من persilaهم من من ببینم من اینکه مشاور من اینا داشم که مشاور شما هیچ گول نه اصلا نمیشه. ناگهان به شرطه که می‌خواستید یه اول تفکیم خانواده اون موقع با حکم بوده الان با یه وسیله به اسم نهادهای شورای محقق میشه خب هیچ منشری هم نداره این چارچوبش بس اشکالی نداره با این وسیله همون هدف از چیز میشه محقق میشه خب یعنی هر همین حرف یه صورت مشترک هم باید داشته باشم جای ایرانستانی کردم من گفتم چارچوب ببین چارچوب رو بسط کنیم دانشگاهی یعنی نه نه اون وسیله خودش تفصيل و وسیله خودش, خودش منو رو به معنی وسیله اینجوری که چارچوب بشه نباشد. هم و چارچوب دیگه حدث اصل که خود انجام میکنه برای وسیله خاصی که دو رو گفتن نمیدونم خود وسیله مشکل داشت اینه که حالا این که شرطش باشه شرطش باشه حالا کسایی تو مقاصد مشکل داشته باشته اینو چه جوایز شما ما یه هدفی داریم تحکیم خانواده ما فهمید این حکم الان به این شین ها انجام میشه درسته یعنی yani اقداماتی که انجام میگوره بر اساس زمان این اقدام و امکان داره آینده بازم تغییر تعالی. بکنه ولی اگه اون بگیر نه قرآن نسل قرآنه که دوتا حکم داشته یعنی عدول نکنه از نسل مثال میزنم بگیر توی عده چی میگیم ما توی عده قدیم میگفتن خود هم قدیم همین مثال یکجا میزنیم قدیم دست کنم و تشریف بدنیم قاردار هست یعنیم گفت دوم هواد صرف این مثل همین دریاه مثل مسالی شما داردید الان دستگاه از تشکیش نیده باردار نیست به همهش با که برو میتونیم یعنی ازدهاش کنید چی؟ چی؟ فرست کن فتان رو فرست کن فتان نه این چی بده این شوهه مثلا تو کجا شوهر رو میگن؟ اختلاف میاخت این چی؟ تو, میگه آه. میگه آه تو دی ان ای, ای بده آه. چرا این همه دیگه دی این ای ای آه. آه. آهر یعنی چی این؟ بگه آفا ای, ای, ای, ای بده اونجای شوهر جوی جوی جواب میده این ما فقط به این <تصفح> نه میگه آه. چون احتمال خطا تو ابزار یک تو فعد دو این احتمال احتمالی که صفر نیست زمانی من میتونم که یقین داشته باشم یعنی قطع به معنای واقعی قطع داشته باشم لذا شما یا اون ابزاری که ساخته میشه شما یه دی یعنی این ای میخواین مج... میگه چند تا وسیله میخواد ما نمی دونیم که به کلی آزمایشگاه میخواد این چیزه ها جایی هم نمید احتمالش بایین احتمالش صفره که یه دونه از ابزار و اون فردی که در هر کنون این یکی من این رو مواسط نوری همه اینجا تو هم مثلا همون روانشوی رو احتمال خطا نداره ایگرانو خطا دارم بره پس این هم نباد بی چون من اینی که از اینجا در آدم حکمان من اهلی و حکم من اهله این حکم اتفاق اونچ که من الان دارم میذارم اینجا خیلی دقیق تر از اون حکمه اون حکم فقط چی بود ما مدام میگیم اون دی ان خیلی دقیقاً از اون که لاله عادی فرض شما حتی یقینی نمیذید حاصل کنید نه، نه نمیتونی یقین حاصل کنی اونجا احتمال دارید ابزاری که شما استفاده میکنید این ابزار کجا احتمال دارهی رهاسازش خب اینجا در درمو... درمو... این احتمال در احتمال در واقع خاموش روزه روشن بود؟ آنجا ما میردم تحفظ این از از هر اینجا شما احتمال خطه بار هامید بار از آزمایش رو بدید دیگه پنج تا جای مختلف که دید به برای. برای دوکن به این بیارد اجازه ندیم اینجایش اموشن یاد شرکتون باشه شرک رو باشه به ذهن هم رسیده بود گفته بودن اصلا اگر کسی یا باشه یا مم. کسی که اصلا خون نمی بینه این چی کار کنه؟ می آقا اینجا خود به خاطر اختلاف میا نیست اصلا یعنی فلسفه ی اثه فقط نیست فقط نیست خای نا می نیست فلسفه اختلاف میا نیست اگر اختلاف میا باشه خب زمان یا نفر اصلا یا است صحیح اینه نه اصلا صحیح نیست این عقیمه صحیح است که با اختلاف اینا باید اینجوری می‌کردن درسته اصلا حق دادن اصلا هر می اونجا میم تعبد یه این دفعه اینجا میشوی تعبد رفتار می‌کنی اگه تو رقیه وقتی باشی اونجا من تونسم اینجا من تونسم حکم چیش کنم برات اونجا نمیتونم اونجا بناذو نمیتونم کشور اونجا نتونستم من یعنی اعراض یعنی اصطلاح تنقیح و اینجا تونستم انجام بدم ولی تو نمیزنه اگه تو نه اعراض اختلاف میآه ولی نفر گفت نه نیست خب نیست اگه باشه اینجا تصریح داریم این داره میگه میگه آقا اگر اختلاف داشتن این چاره من میگم آفرین این چاره من هست چرا این چاره رو گذاشته من؟ اول پس از که هایی که یکی از راه هایی بگیه اول گفتم این یکی از راه ها برای چه موقعیه؟ تو زمانشه، تو زمان خودش یک از راه ها ولی امروز راه بهتری من دارم حالا آیا این راه من ناقض این راه نه؟ ناقض نه؟ نیست؟ اگه دیگه رفت میرن که طلاق توافقی میگیرن؟ انخفتم هست یا نیست؟ بله از کیچر چی این آبه میگه دوسته. 2 آینده روی 4 میام بیاد روی 5 میام حکم میگیرن مشاورم میگیرن مشاوره میگه به طلا بگیرید حکموا میگه نه نه طلا بالاخره میتونه پیش بیاد درسته بله واس خب باز هم اینا چها هر چیزی هست توی شما تو دوید یعنی دیگر... میخوام کلمه ترد تو به کار ببرن رو بگم آبایی مترد در من تو همه جا داشته باشه باشه، داشته باشه جایی شما مراتو پیدا میکنه یعنی ما تو تنپونی هست پیدا نمی اونجا علت نیست که ما؟ خفرق از کجا بسیار از نمیشه فهمیم ما علت کنیم که خرکیش ما دومباله ببینید ما نیستیم که درست اله ها رو واقعا مثل رو یه اشتادی باید که تا که یعنی بسیار از اون واقعا نیستش علت نیست اما اگه ما باشیم یک حالا همین نشه اختلافم هم شده مثلا تو سجده‌ای که نوشتم مثلا یادم رفت اون رو بگم تو سجده باز واقعا جای شک این تحقیق خوبی واقعا جای شک هست خیلی واضحه منو دیگه خود سریام این یه مثال به سجده آقا سجده الان خوب می‌دونید تو فقه عبادات ما بین ما با و اهل و برخی خود اهل اختلاف هم. چه آیا سجدگاه من اون پیشانی من که میخواد آیا الزامن باید زمینی باشد یا نه چیز دیگه هم میتونه مثلا من این گوشه اوام رو میتونم بذارم آیا گوشه اوام یاد اینکه دارم مثال بذارم چون تو روایات اومده همه روایت هاش هم دون مثلا گوشه اوام رو بذاره یا پشت اوامش عبام. رو مثلا بذاره او از کجا در می‌آمی آمی؟ ما اصل سجده یه بحثیه که به معنای لغویش ما بگیریم مثلا یا سجده یه بحث قرار قراریم که انسان باید خضوع داشته باشد خشوع داشته باشد در برابر بر بر بر, بر, بر, بر, بر, بر, بر. تو فکر عملی ما می‌گو نماز یا نماز چیه؟ یا نماز ارکانی دارد و واجبه داره واجبات غیر ركنی هم داره واجبات ركنی شو بگو پنج واجب داره نیت. نیت. خب مشکلی ندارم باش تکبیرة الاحرام مشکلی ندارم باش مشکلی نداره. میگه میگه چیه بگو حد دو سجده میگه چیه میگه پیشانی را بر چی بذارن یا بر زمین رو زمین بذارم آقا کنید الان تو عرف الان اما اومده همیری رو اینجا ناکنم آمین زمین آقا کبایی رو چما هم زمین من میزنم اما من شما میگه آقا نزاشتی رو زمین؟ بگی؟ نه. نه میگه روی چی رو زمین گذاشتم. پس یه نگاه عرفی بکنیم بهش زمین خیلی اطلاق پیدا می‌کنه هر هرچی که باشه آره هر باشه, باشه باشه که باشه آره باشه دیگه بخش تریه نه الان میگن زمین. من یه واسطه هستم به تو روایت استفاده زمین بیام. اون زمین وای اینا نه من اون مرد بخش رو زمین. رو فرش نگاه اولی باش بکنم یا نه. نگاه دوباره مثل همینجا یه فلشبک بزنم به صدر اسلام که پیامبر چجوری نماز بخوندن؟ اصلا پیامبر تشریع این حکم چیجوری بخوندن؟ پیامان یه جمله در بودن سرول کمورایی و ارزو مسجدن و تحور رو میزنن به دست تیمم درست جو. مصر، محل سجده، جوه در لیال ارز و زمین برای من شده خب زمین، ها تفصیل کام نگاه قرفی، اینایی فرش انا زمینه بیارم تو لغت نگاه کنم، زمین و لغت میگه آها زمین عبارت هست از بچه هل ارز مثل اونجا میگن فتح یمم و دا مثلا با وجمال از چی؟ سنگ و ریگ و خاک و درست شد؟ کلوخ کلوخو و چمنزار باشه چی؟ یه جما چمنه، چمنه، ریزم باشه رو با اینا بله. بزنیم؟ از خود عرض این در در میاد؟ بله، در میاد، از خود عرض در میاد یا خب من تا نمیتونه اون رو چیجوری به هم دوبارش یا من برد میادم تو تاریخ سیره رو نگاه کنم یا وقتی پیامبر نماز میکنند اولا اون زمان فرشوهی یا چیزه اصلا نه. نبوده اگر بود حسیر ایشی؟ آره اونجا مثلا با این شاق و بردی درخت خورمانی یا درخت نحل اینا برای مثلا حسیر میبافتن بعد میگه روایات رو نگاه کنم میگه با ما روایات رو نگاه کنم من نگاه کردم برای خودم تقسیم بندی درست کردم از تو روایات میگیرم ببینید سه مرحله داشتیم مرحله اوله من اینجوری براتون میگم پیام سجده یعنی چی؟ شرعیش میگه سجده یعنی وجه و جب حتی عرض قرار داده پیشانی روی که بینیم بحث استحبابش بحث نه، درست شب بیان، شرکیش، روی شرکیش هم همینه لغت میوشه، اینجا یه ایشیه ورز کن، جب حتی علم، عرضه بیان، حک، رو زمین بذارم خب یعنی من بزنم زمین زمینه دیگه که تا لغت کنم، نمیگی شما لغت، لغت این همین رو میگیم بس من بزرم زمینه. بیان یه چیز شرایطشه دیگه شرایط دیگه لغت نمیتونه برای شما به dietro او زمین چه زمینی چه شرایطی؟ چند جای بدن مثلا زمین باشه شما با میگی چند جای بدن, بدن باشه هفت نقطه از نقاط بدن دیگه پا و زانو و دو تا دست و پیشانی بینی مستحب درست شد اینا قیودشه دیگه اینا رو در قانون گذار، گزار شارع برای من بکرم. شاره رو نگاه میکنیم، میرسه سه چیز سه تا سه مرحله میرم چرا برد. یک میگم آقا قیامت وقتی مبلوست شدن فقط سجود علال ارز داشتن ارز به معلوم واقعی یه یعنی ریگ و سنگ و خاک و همین بعد یه باشی نماز که خوندن یه روز یه بار یه بار به رو بخونیم دیگه شما برگرمونی یعنی به جرمایی وصلت ما نموده سایمون همچه نبوده یا اوپارد یه ای شدن، پیامبر دیدن که اصحابشون بعضی ها یه مشروعی دست شده، بایی سلام سلام بسم الله الرحمن الرحیم و این ری را از این دست به اون دست دارن از این دست، این دست و دست می بعد چیکار چی کار بشه چون پیش رو نیره بخواد بذاره، خونک بشه خب یک کاری دیار می شود. برای خونک کردن کرد، دوستان دو عبودهای بری. این گوشه لباس تو، عربی هم بوده, بوده <محبش> عبا عبا. یا حالا اعوال بوده مسی هم به روز داشته یا حالا یه رو مهید یه رو مهید اعوال های این گوشه اعوال رو بشه اعوال رو یا رو با این تو پیشونیم مثلا یه این حالا روزه ها ما مثلا رو باکنم آیا مثلا حکم درست بکنید، اون گرما رو شنه این کار میکرد این هم یکی یه مرحله سومی. بامی چه مثلا اصلا دیگه این نماز بندن داره مشقت باشه اما نمیتونم دیگه مشقت باشه پس سجده، پیامبر یه ای داشتن مواجه شدن با یک نکته که اون شنها این دست به دست رو کردی از خوابشون یا مثلا این گوشه بذاره زیر سرش آیا مثلا چکار کار یا بیا خب بعض رواید بیا که خب مثلا ما دیدیم که این عقا رو زیر سر حالا اینجا میانم یه خب شاید اینجا همون چالشه داره درست میشه آقا قرآن بگه زمین زمین خب الزامن نباید اون زمینی باشه که هیچ فاصله ای نداشه مثلا مثال بزن بری تو کوچه وایسی سی زمین دو خودت هیچ چیزی ازش درست کنی مثلا هرسه نباشه ها هرسه نباشه و هر میگم خب زمین موکت و اینا چیه یا من اینجا زمینم سیله سیره سیله سیره بعد اینجوری نبوده که اون سرشون سرشونو بذارن برای گرما نهایت چیزی که پیامبر درست کردن دستور دادن درست کنن تا این موانه پیشتاید حسیر بود بعد از حسیر من یه تنگیبناز می میگم آقا حسیر چیه؟ یه برد. چیزیه که از زمین می یه ارتباطی با زمین پیدا کرد روز از زمین ارتباط پیدا کرد پس زمین برای من موضوعیت پیدا میکنه میام مواجه میشم با برایتون در آوردم روایات گوناگونی تو این زمینه که هر روایتی عرض کنم خدمت شما یه جوری میگه هر روایتی یه جوری میگه خب حالا باید میام آیا اینجا منات درست بکنم؟ یا نه دلم سراغ سیلگی خالی ببین اون اختلاف اینجا خودشو نشون که اون من معنات درست میکنم. منات بگو آقا یه اصلی داری؟ به نام خشوع خشوع در خدا داشته باشتون؟ حالا میخواد روی زمین باشه؟ میخواد روی موکت باشه؟ روی حسیر باشه؟ یا آن ما برسوده موح مثلا باشه؟ یا اصلا باشه؟ یا بگی؟ نباشه اینجا میشه یه این مناتی درابور با توجهی منات بگیم کار عامه کار اشتباهی نیست کار عامه کار اشتباهی نیست یا نه برگردیم به اون حرفی بزنیم که تو اده زده اینجا یا اینجا در واقع دسترسی بشر به عبادات و فلسفه عبادات چه جمعه رابطه بین انسان و خالقه نه رابطه دو دوتا مخلوق دو انسان درست شد؟ او یه تفاوت معاقبی با اینجا پیدا کرد درست شد؟ ببینید همین این باعثی میشه هم. ما تو این کار بین آنما دستام بالاست من نمیتونم جه تنقیه ملاقات کنم بگم باقا یه جمله شما دو هفته قبل گفتید که طرف دلش مثلا پاک باشه از اول تر پرم از اول تر پرم از اول تر جمعه دره دلش پاک یه مدانیشون یکیشین یکیشین درست شد؟ خب دلش پاک باشه <Yemen> <minut Ginaving laugh> شما تا حالا رفتیم چه یک اهل سنت باشند یک واقع دیگر دیگر دیگر دیگر رفته باشید چی؟ مختلف لارم بستونی و شیدی آن از دیگر خیلی خشنگی کردیم واقعا بعضیشون ظاهرشون نموشه از آن اون حضور قلبی که معنا شما تلقی داریم ازش اصلا این نداشته باشه بگیم آقا خودش فوقی بینیم، سوال میداری میکنی با این ظلم چه حضور درمیم مثلا تو مثلا به فهمویی که امیر المومدین رو, کنار رو اصلا کنار میزنی یه ازوهی رو میدید بودوی در از از این زوهی میپیدانه بشه در آلم هستی که راست شد که گردن ادالت رو تو بزنی بعد حضور قلب بشه چونکه اصلا معنا نده اصلا نگاه رو میزنیم کنار دوستان نگاه کلامیمون رو بزنیم کنار دوستان حضور کنی شانس همه معنیت این رو حضور قلب معنیت نیستان چیه؟ حضور قلب اون آ <تصحیح> این تعریف ادعا از کجا ولی این کارت خیلی نشی بعد این شامپو بدن این نخورده خیلی مراقبه به کسی پوش نداده و دهانی نکرده و اینا رو برای آدم میارن و خودش خود به خود نه نماز و سر هر چیزی معدی باشه هر چیزی آقا حقایی نمیکنم چون از حقیقت معندیت دوره شكه. مثل دو بازیگرها آما بازیگرها هم این چه؟ سلطه دیدارن که مثلا به موارد اخلاقی و انسانی رو رعایت میکنم اقلام میکنم اصلا خب کدافت رو در روح بینام میکنم بازیگرها یا بازیگر یا بازیگرها یا خود رو میکنم خیلیشان شروع شون کنم <متحد> اما, اما از حقیقت و معندیت کنم این صاحب موقعا فهم بداره یه با س آدم تونیدیو همی آدم خوبا میتونه حضور غرب داشته باشه نبیدین حضور قلب که من دارم <متصفح> یعنی که <متصفح> به خدا اعتباط داشته این یه مثلا حضور نیست کیه؟ پاشم من چی که من می خوام یه بحثی کنم که خوابم رو پرت ها بگم مثلا کسی به این طوری که گرفته مشارکت یا حداقل مشارکتی یا حداقل شیری درسمی میگه اما خیلی را میرم کلاس قرار بود انجام داده شده یا با هم صحبت کنیم میذارم اینجا ولی خوابتون نمیگذره ولی شما شما مثل اینجایی هستایی که میگن آقا رفتی تو آره بچه؟ میگم که آره باعتی میگن آقا اعزام که بیا مغازر رو ول میکنه میره نماز میکنه نماز صبح بچه اینقدر رفتی تو سنامه میره باقا بچه اینقدر بروی دستشون بکنه بچه داره گریه میکنه نماز بکنه, بکنه؟ یه بایی تو ایران بچه من مثلا بیس سالشه خوابه نماز صبحش هم غذا میشه ببینی چه قیاسی <تص> از آن میگن مغازه رو فلم کنه میره دوست اصلا اونجا پیدا نمیشه دوست پیدا نمیشه اصلا من مردول هم نیست یا مثلا یه اروپا رفتی بگیم که چطور مثلا؟ نه اروپا نرفتن اصلا کارش زینان رفتی مقاید اون در جفت رو کهر باشن سوارز ایران رفتی این رو یه دارم مثلا روی مکه و مرین رو هم کرده اگر رفته باشیم سوریه من آو این اینجوری برایه اینجوریه بعد دروح دروح در بیا دروغ اصلا میره می میفروشیش اصلا نه یا این نه این قصود منه بعد دیگه بی تو برو ببین زندگی کردن و مصالبینی رو اونجا یاد بگیر لطافتی که شما میگی داره اهمیت به نوازی که میخواد داره اول وقت کنم هست آقا مثلا کاری مثلا جنسی, جنسی باید. و به همه را تکه اسمدارپ شرعی شده 112 و 23 و این چیزها ببین، شما اونجا بهشته چی میخوام من از اسلام؟ پس ببین، یا میرین دو کشور مثلا شما برون فرانسه دوست بعضی از شما دین میگن اصلا بین از سیاست جداست جما نگاه شکنه بگیر آقا دین از اینه این آقاست که تاهایی فقیتا دل, دل دقلات نوشته بگو رنبتش کنه بلش روز کنار پس این خیلی لرمیناییه نرستی بگو خیلی میشه بحث کرد دو هم با بیشتری باشه احراج که ارکس کردم بحث کردم راجب محاربه صحبت نمون بحث روزمون هستش که محاربه اینو باید تدبیقی آره اینو باید محاربه ننه <تصفح> از سوطارو اعدامو میجنگن نشن برای اعتراضات دو, دو, دو سال دیگه اداری دو سال دیگه, دو سال دو <تصفيق> دو سال دیگه, دیگه. آره سال دیگه اینکه مدرسه شما هم که در عرض خطر دفومین بار همش حبس شو ارتباط که احتیاج به معلوماتی جنمی بیرون آره، شداشت که مطرسف در بولار رو با چیست؟ یه تو برو توفه آره، یکیشه خامه بودش کنیم؟ یه، خیلیه اینه اوکی آره، زودتر بریم؟ اونجا خیلی تو چیز هم نیز جا از دادمون رو مناسبه یعنی بندازن به ما ها نمیرسه تو سالن سالان بعده دفتر آجام هاییم کنیم خب، دوستان ع